مرکوزگری به زیر کردم گذری، از خاک همینمو تردم تبری، من دیدم اگر ندید هر بیبسری، خاک پدرم مکف هر کوزگری. چون جنس مرا خاصه بداند ساقی ساقی، صدفصل زهر نوع برانت ساقی، چون وامانم به رسم خود باده دهد، در حد خودم در گذرانت ساقی. ای hey, دهر به کرده های خود معترفی، در خانقه جور و ستم متکفی، نعمت به دهی و زحمت به کسان، زین هر دو برون نیست خری یا خرفی. هی hey, وسته ز بحر شهوت نفسانی، این جان شریف را همیر انجانی، آگاه نی که آفت جان تو اند، آنها که تو در آرزوی ایشانی.